مجده وصل تو کو که سر جان برخیزم تایر قدسم و از دام جهان برخیزم به ولای تو که گربنده خیشم خانی از سر خاجگی کون و مکان برخیزم یارب از ابر هدایت برسان بارانی پیشتر زن که چو گردی زمیان برخیزم بر سر طربت من با می و مترب بنشین تا به بو یفز لحد رخص کنان برخیزم خیز و بالا به نما ای بوت شیرین حرکات کسر کس جان و جهان دست فشان برخیزم گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کشم تا سهرگه ز کنار تو جوان برخیزم روز مرگم نفسی محلت دیدار بده تا چو حافظ سر جان و جهان برخیزم